حکایت زاهدی مهمان پادشاهی بود چون به تعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او تا زن صلاحیت در حق او زیادت کنند ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه که تو میروید. به ترکستان است چون به مقام خیش آمد، سفر خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در تعام نخوردی؟ گفت، در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت، نماز را هم قضا کن، که چیزی نکردی که به کار آید، ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها بر گرفته زیر بغل تا چه خواهی خریدن ای مقرور روز درمندگی به سیم دقل؟